دوستان، بر کسی پوشیده نیست که شیطان به دنبال اینه که بدوزده، بکشه و نابود کنه. اما راهکار اون برای این کار چیه؟ دوستان عزیز، به درس امروز در دانشگاه کوچک کتاب مقدس به دقت گوش کنین. معلم ما رویا روی بین موسا و فرعون مصر رو تشریح میکنه. این درسیه که چشمها رو باز میکنه که نشون بده چطور رفتار فرعون بیش از چهار هزار سال قبل به موازات کاریه که شیطان امروز میکنه و به ما تصویری از استراتژی امروز شیطان میده. با دقت گوش کنید تا استراتژی دشمن رو یاد بگیرین تا اینکه بتونید پیروزی خدا رو در زندگیتون تجربه کنین. بیاین در ادامه بررسی کلام خدا و درس امروز با معلممون همراه بشین. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. جایی که کتاب مقدس رو بررسی می کنیم و هنوز در اول راه هستیم. الان به کتاب دوم رسیدیم. همینطور که در بررسی کتاب خروج پیش میریم، می این حقیقت رو به شما یادآوری کنم که کلمه خروج یعنی بیرون آمدن، این کلمه موضوع کتاب رو برای ما بازگو می کتاب خروج بیرون آمدن از بردگی رو به ما نشون میده. بردگی واقعی که قوم اسرائیل در مصر تجربه میکردند. بعد کاربرد کتاب خروج راهای خروج از بردگی گناه رو که امروزه ما تجربه میکنیم به ما نشون میده. در اولین جلسه ما از کتاب خروج کتاب را از منظر تاریخی بررسی میکنیم. بعد بر بعضی اصول که لازمه رسکاری هست متمرکز میشیم. همین که به تصویر رسگاری عظیم در کتاب خروج نگاه می کنیم و سعی می کنیم که کاربرد واقعی کتاب خروج رو ببینیم بر موسا متمرکز میشیم شیم که بزرگترین وسیله انسانی رسگاری در کتاب خروج هست. در این جلسه می خوام که بر تصویر رسگاری در کتاب خروج متمرکز بشیم. رسگاری بزرگترین پیغام کتاب خروج هست. همونطور که گفتیم کلمه رستگاری با کلمه نجات مترادف است، مخصوصا در عهد قدیم. وقتی در کتاب خروج به موضوع رستگاری می رسیم و نجاتی که این قوم تجربه کردن قدرت خدا رو می بینیم. به این خاطر که چیزی به نام نجات در گذشته و حال بدون قدرت خدا وجود نداره. در کتاب خروج شما قدرت خدا رو می بینید که به روش های منحصر به فرد ظاهر میشه. دست عظیم و قدرتمند خدا رو می بینید که بر مصر و بر فرعون به شکل ده بلا فرود میاد. این ده بلا درس بسیار جالبی هست خصوصا وقتی ما اونا رو در زندگی خودمون کاربردی کنیم. پیغام ده بلا که بر فرعون و بر مصر فرود میاد و اونها رو به جایی میکشونه که حاضر میشن قوم ابری رو رها کنن، تصویری است از یک حقیقت بزرگ که در کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه تعلیم داده شده. در اول یوحنا باب چهار آیه چهار، اون حقیقت اینطور بیان شده. آن که در شماست، بزرگتر است از آن که در دنیاست. یا میتونیم اینطور بگیم. کسی در قلب شما هست که از هر شریری در این دنیا قوی تره. این کاربرد واقعی پیغام اون ده بلا هست. همونطور که میبینید اولین واکنش فرعون به درخواست موسی و بزرگان قوم اسرائیل مبنی بر این که اجازه دهد این قوم بروند بود راستش رفتن گروهی کوچک از بردگان یهودی به حضور یک فرعون مصری و درخواست آزادی چیز موزهکی بود. حالا توجیهی که اونا برای این درخواست خنددار داشتن و چندین بار در کتاب مقدس آمده اینه. این بزرگان به همراه موسا و هارون به فرعون مصر میگن خدای یهود با ما ملاقات کرده پس اجازه بده بریم چون این چیزی که خدا به ما گفته به تو بگیم. به نظرم این خیلی چالش برانگیزه. وقتی ما میاییم با هم خدای زنده و حقیقی رو بپرستیم، نمیدونم میتونیم اون منظره رو تجسم کنیم که از یک برنامه پرستش بیرون بریم و به مردم این دنیا بگیم ما الان با خدای زنده حقیقی ملاقات کردیم و این چیزیه که خدا میخواد به شما بگه. فکر میکنم کنم منظره بسیار مهیجی باشه. موسا و بزرگان قوم تحت چنین شرایطی نزد فرعون رفتن. و البته در ابتدا فرعون امتناع کرد. کتاب مقدس میگه بارها اونها رو رد کرد. برای مثال در خروج هفت سه و چهار بیست و یک که خدا امدن قلب فرعون رو سخت کرد تا اینکه فرصت داشته باشه قدرت عظیم خودش رو وقتی که بلاهاش رو بر فرعون نازل میکنه ظاهر بکنه. این راهکار بسیار جالبیه. این مشکل الهیاتی برای ادیی و مشکل فلسفی برای ادیی دیگه هست. اون مشکل واقعی شریر هست. شرارت از کجا میاد؟ زمینه ای که شریر تحت اون در این دنیا کار میکنه چیه؟ اگه خدا خدای نیکو هست، شریر چطور میتونه عمل کنه؟ اگه خدا خدای قدرتمندیه چرا به شریر اجازه میده؟ در این ناسازگاری بین موسی و بزرگان قوم اسرائیل از سوی و فرعون از طرف دیگه، فکر میکنم این منازعه بزرگ رو میبینید. این کشمکش بزرگ بین نیکی و شرارت که در جای جای کتاب مقدس تصویر شده کتاب ایوب هم همین منازعه رو به تصویر کشیده این کشمکش چیزی مثل این رو تدایی میکنه خدا به شریر اجازه میده در این دنیا باشه چون شریر به خدا زمینه ای می میده که خدا قدرت عظیمش رو در این جهان ظاهر بکنه محبت و فیض و رحمتش رو اگر شریر وجود نداشت شاید خدا فرصت نمی نمیداشت همه این چیزها رو ظاهر بکنه این چیزی که به طور برجسته در کتاب و مقدس می‌بینیم. شریر به اهداف خدا خدمت می‌کنه. این خداست که به شریر اجازه میده وجود داشته باشه. خدا دانای مطلقه. همه چی رو از شریر میدونه. خدا قادر مطلقه. خدا اگه بخواد می‌تونه هر کاری بخواد با شریر بکنه. فکر نمی‌کنم ما بتونیم به هیچ نتیجه دیگه‌ای ای جزی برسیم که شریر با اراده و مجوز خدا در این دنیا وجود داره. بنا به دلایلی خدا به شریر اجازه میده. با این برداشت شریر به خدا جلال میده اینجا مثالی هست از اینکه شریر چطور خدا رو جلال میده خدا به موسی میگه وقتی نزد فرعون بری او اجازه نخواهد داد شما برید من قلب او رو سخت خواهم کرد. چون من قلب او رو سخت میکنم فرعون با شما مخالفت میکنه و سعی میکنه به شما ضربه بزنه وقتی فرعون با شما در بیفته مخالفت او به من فرصتی خواهد داد تا این حقیقت رو به ظهور برسونم که من قدرتمندترین خدای روی زمین هستم و من خدای زنده حقیقی هستم. اون حقیقت وقتی ده بلا بر فرعون و مصر نازل می میشد، ظاهر شد. بلاها قدرت خدا برای نجات رو نمایان کردند. توسط بلاها خدا مانند فیل بر فرعون فشار میاره تا اینکه بالاخره فرعون اجازه میده بنی اسرائیل برن. در کتاب خروج شما میتونید علاوه اون حقیقت بزرگ چیزی رو ببینید که ما بهش اصول نجات از گناه و شریر میگیم گفتگوی عظیم بین موسی و فرعون رو در این قسمت از کتاب خروج میبینیم در حالی که موسی رهای قوم خدا رو درخواست میکنه و فرعون از اجازه دادن امتناع میکنه بلاها همچنان نازل میشن و این بلاها کاملا متقاعد کننده هستند پس کم کم فرعون شروع میکنه به تسلیم شدن به قدرت خدا اما در حالی که تسلیم میشه به گفتگوی او با موسا توجه کنی؟ بسیاری به موسا به عنوان تصویر نجات دهنده ما ایسای مسیح نگاه می و فرعون رو تصویری مجسم از شیطان می که عامل شرارته اگه ما عوامل محرک چیزی رو که بین موسا و فرعون در جریانه بدونیم میتونیم عوامل محرک چیزی رو که امروز بین ایسای مسیح و شیطان در جریانه بدونیم ایسای مسیح در مردم زندگی می و از طریق اونا کار میکنه شیطان هم در مردم زندگی و از طریق اونا کار میکنه وقتی ما عوامل محرک چیزی رو که با نجات و رهایی ما از بردگی و سلطه گناه سر و کار داره درک کنیم این بینش این بخش از کتاب خروج رو به ابزار تعلیم بزرگی برای ما تبدیل میکنه برای مثال چیزی رو که وقتی بلاها شروع میکنن به نازل شدن بر فرعون ملاحظه کنید به می میرسه که او شروع میکنه به تسلیم شدن فرعون بالاخره در باب هشت آیه 25 کتاب خروج وقتی موسی درخواست میکنه که به بنی اسرائیل اجازه بدن تا اونها برند و برای خدای خودشون قربانی کنن میگه میتونید برای خدای خود قربانی کنید به شرطی که مصر رو ترک نکنید همینجا در مصر قربانی کنید به لحاظ کاربردی خیلی ها بر این اعتقادن که این عوامل محرک به ما چیزی نشون میدن وقتی به جمع دوستان خود اعلام میکنید که ایماندار شده اید یکی از اولین چیزایی که اونا میگن چیه اونا میگن خوب امیدواریم که هنوزم توی دنیا باشی یعنی امیدواریم هنوز یکی از ما باشی امیدواریم این به این معنی نباشه که میخوای از ما دور بشی به عبارت دیگه اگه شما میخواید ایمان بیارید همینجا تو مصر ایمان بیارید توی این دنیا این کارو بکنید اما کلمه کلیسا در عهد جدید کلمه‌ایه که معنیش اینه فراخوانده شدگان. طبق عهد جدید به عنوان عضوی از کلیسا ما فراخوانده شدگان از دنیا هستیم ما قرار نیست در مصر یا در این دنیا باشیم با همون تعریف کلمه کلیسا اونهایی که عضوی از کلیسا هستند از این دنیا فراخوانده شده‌اند شاید فشار شیطان بر ما توسط دوستانمون وارد بشه که میگن عبادتت رو در مصر انجام بده بعد از اینکه چند بلای دیگه نازل میشه تلاش بعدی که فرعون میکنه که موسا رو به سازش بکشونه زمانیه که فرعون میگه خب میتونید برید اما زیاد دور نشید این هم تصویری از روش اعمال فشار بر ایمانداران امروزی هست اونا میگن بسیار خوب اگه میخوای ایماندار بشی و از این دنیا کناره بگیری امیدوارم که نخوایی که از اون متأسف‌ها باشی یعنی امیدوارم که مساله ایماندار شدن رو خیلی جدی نگیری در باب ده آیه 8 بعد از چندین بلا دیگه فرعون میگه بسیار خوب شما میتونید برید اما هاتون باید در مصر بمونن وقتی شیطان سعی میکنه مانع زندگی ما در ایمان بشه اگه او نتونه ما رو در مصر نگه داره یا نظر زیاد در ایمانمون دور بریم اگه ببینه نمیتونه ما رو بر سر ایمانمون به سازش بکشونه او سعی میکنه فرزندان ما رو بگیره حیرت انگیزه که چه بسا اشخاصی که خودشون ایمان آوردن اما فرزندانشون رو در مصر جا گذاشتن اونها رو به بهترین مدرسه ها میفرستند اما وقتی به مسئله تربیت روحانی بچه‌ها میرسن اونها رو در مصر جا میذارن به اعتقاد من این استراتژی شیطانه که اینجا در فرعون تجسم یافته چهارمین کوششی که فرعون کرد تا موسی رو به سازش بکشونه اینه که فرعون میگه بسیار خوب پس میتونید با بچه‌هاتون برید اما گله و رمه های خودتون رو اینجا بذارید گل و رمی اون ایام برابر با حساب بانکی امروز بود. وقتی پوشش چهارم شیطان رو برای سازش در زندگی امروز خودتون بررسی کنید، مثل این میمونه که شیطان میگه نزار که ایمانت بر کیف پول اثر بذاره. وقتی شیطان نمیتونه شما رو به سازش بکشونه یا فرزندانتون رو بگیره، سعی میکنه شما رو در مورد پولتون به سازش بکشونه و شما رو مباشری بی صداقت بکنه. این تلاش های فرعون برای واداشتن موسی به سازش استراتژی امروز شیطان رو به ما نشون میده. بزرگترین دشمن بهترین خوب هست. اگه خدا میخواد ما یه پزشک خدمتگزار در نقاط محروم باشیم، شیطان ما رو وسوسه نمیکنه که بریم و بانک بزنیم. او میخواد ما همینجا تو همین کشور پزشک باشیم. شیطان به ما چیز خوبی عرضه میکنه که بهترین خدا نیست. شیطان سعی میکنه ما رو به این سازش کوچک بکشونه تا اینکه روزی بفهمیم ما خدا رو خدمت نمی کنیم و او رو در اولویت قرار دادیم و در خدمت او هستیم. موسا واقعا قوانین نجات رو در این تلاشهای فرعون برای به سازش کشاندن او به ما نشون میده. در هر بار موسی قطعا از سازش کردن با فرعون امتنا میکنه. من روشی رو که او در باب ده آیات 24 تا 26 اینو بیان کرده خیلی دوست دارم. موسی میگه ما با جوانان و پیرانمان خواهیم رفت با پسران و دختران با گله‌ها و رمه ها خواهیم رفت موسا هیچ سازشی به هیچ عنوان با فرعون نمیکنه. به این وسیله موسا اولین اصل نجات از گناه رو به ما نشون میده اولین اصل نجات از گناه چیه اون اینه که در وهله نخست درگیر هیچ گناهی نشید این اولین و بزرگترین اصل نجات از این مشکل اسارت و سلطه گناهه به عنوان یه شبان من سعی کردم یه سازمان خدمتی انسانمهور داشته باشم به طرق مختلف به انسان انسانها متوصل شدم من یک برنامه صبحگاهی مطالعه کتاب مقدس با صبحانه داشتم که طی سالها صدها نفر در اون حضور داشتند. کسانی که در این صبحانه حاضر می شدند در انواع گناهان بودند. من سعی کردم به این افراد کمک کنم زندگیشون اصلاح کنم. حتی به های اونها مشورت دادم یادم یه روز بعد از جلسه نهار نههار مشاوره مشکلی با یه مرد داشتم او از من پرسید چیکار باید بکنم؟ و من گفتم تو کم و بیش میدونی باید چیکار کنی؟ او با کس دیگه غیر از زنش زندگی می کرد. بهش گفتم مشغش رو رها کنه و نزد زنش و بچهش به خانه برگرده. خب اون شب او به مشغش گفت میخواد نزد زنش برگرده. او در آغوشش نشست و یه ماچ حسابی کرد و گفت حالا به من بگو میرم وقتی او هفته بعد برای ناهار اومد در حالی که با مشت بر روی میز رستوران میکوبید به من گفت به خدا آرزو میکنم که کاش نیم نگاهی به اون زن نینداخته بودم اما او درگیر شده بود عمیقا درگیر شده بود رها شدن از این محلکه خیلی هم آسون نیست به این دلیل که اولین اصل نجات از گناه اینه که در وهله اول درگیر اون گناه نشی هرگز با گناه سازش نکنید شما همینقدر نمیتونید با گناه هم زیستی کنید که نمیتونید با سرطان هم زیستی کنید پس با گناه سازش نکنید این همون چیزی که وقتی به اصول نجات در کتاب خروج نگاه میکنیم موسا به ما نشون میده همونطور که من از تجربیات شخصی خودم فهمیدم شما هم خواهید فهمید که این اصول نجات نه تنها برای امروز کار داره بلکه اونا همونطور در زندگی ما کار میکنند که چهار هزار سال پیش در زندگی موسا و بنی اسرائیل کار امروز کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن به ما داره. اگرچه هزاران سال قبل نوشته شده، حرفهای زیادی داره. چون اون کلام خداست و هدف از این دوره بررسی کتاب مقدس اینه که کتاب مقدس رو مطالعه کنیم و چیزی رو که میگه و معنی اون و کاربرد اون رو توی زندگیمون یاد بگیریم. در خلال جنگ کره 7190 مرد آمریکایی توسط کمونیستای چینی زندانی و شستشوی مغزی داده شدند. و تعالیم کمونیستی به اونها تلقین شد پیش از مداخله چینی ها در جنگ کره همه امریکایی ها توسط کره ها زندانی و اعدام شدند و مردانی که چینی ها دستگیر کردند انتظار میرفت به همون سرنوشت دچار بشن اما برعکس اونها با لبخند و دست دادن و یه باک سیگار با اونها مواجه شدن به این زندانی ها گفته شد خودشون رو زندانی احساس نکنند بلکه فکر کنن دانشجو هستند اونها طی دوره بیش از دو سال با تعالیم کمونیستی آموزش داده شدند حدود یک سوم اونها تبدیل به کمونیست شدند مردی به نام اوژن کینکیت از طرف ارتش مأموریت یافت در این باره کتابی بنویسه نام کتاب این بود در همه جنگ ها به جز یکی در نتیجه چیزی که برای اسرای جنگی در جنگ کره اتفاق افتاد رئیس جمهور وقت جنرال دوایت هایزنهاور بخشنامه انضباطی جدیدی برای تمام پرسنل خدمتی نوشت رئیس جمهور به یکی از دستیارانش گفت کسی نباید به من بگه وقتی من بچه بودم هیچ گول شیطان رو نخوردم من اینو تو خونه و در کانون شادی یاد گرفتم اما به نظر میرسه در روزگار ما ما باید به جوونهامون بگیم شما نباید گول شیطان رو بخورید ببینید استراتژی شیطان همیشه اینه که ما رو به سازش بکشونه اولین اصل نجات اینه درگیر گناه نشید اما اگه قبلا توی گناه افتادید چنان که خیلی ها افتادن راه بیرون رفتن از اون چیه این یکی از پیام های کتاب خروج هست. برای بیرون آمدن از اسارت و سلطه گناه به معجزات زیادی نیاز دارید. اون چیزی که کتاب خروج به ما میگه. کتاب خروجی معجزات رو زیبا و به صورت تمثیل به تصویر میکشه. من فکر میکنم یکی از اولین معجزاتی که در کتاب خروج به تصویر کشیده شده معجزه یکی اگه شما میخواهید از اسارت و سلطه گناه رها بشید بهش نیاز دارید. اون معجزه برای ما به صورت معجزه شکافته شدن دریای سرخ نشان داده شده. معجزه شکافته شدن دریای سرخ یکی از بزرگترین معجزات در کتاب مقدس است. اون معجزه بیانگر رهایی نهایی اونها از اصارت فرعون هست. در سرتاسر سر این گفتگوی بین فرعون و موسی میدونید که فرعون نمیخواد اجازه بده بنی اسرائیل برن. بعد نظرش شواز میشه و میگه میتونید برید و باز تغییر عقیده میده و وقتی بلاها متوقف میشن فرعون میگه نمیتونید برید و وقتی بالاخره بنی اسرائیل آزاد میشن وقتی به دریای سرخ میرسن فرعون بار دیگه فکرش عوض میشه او لشکرش رو جمع میکنه و وقتی قوم خدا به دریای سرخ رسیدن لشکر فرعون به اونا حمله میکنه و ظاهرا به نظر میرسه فرعون میخواد اونا رو قتل عام کنه. این یکی از جاهایی که کتاب و مقدس به ما میگه الان وقت دعا کردن نیست موسا به رو در افتاده، او گرد و غبار سواران مصری رو می‌بینه که نزدیک میشن. پشت سر بنی اسرائیل چیزی جز دریا نیست و در پیش رو چیزی نیست جز لشکر مصریان. وقتی موسی شروع به دعا میکنه، خدا به او میگه: چرا برای من ناله میکنی؟ چرا دعا میکنی؟ چکیده چیزی که خدا به موسی میگه اینه: اراده من معلومه. الان وقت تشکیل جلسه دعا نیست. فقط یه مسیر هست که باید بری. تنها راهی که احتمالا میتونی بری توی آبه. پس راه بیفت و به سمت دریا برو هر کسی باید قادر باشه اینو ببینه بعد خدا میگه به قوم من بگو که به جلو برن به این معنی که باید به آب بزنند موسی ایمان عظیمی داشت و به قوم میگه بیستید و نجات خدا رو ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد وقتی اونها با ایمان به سمت آب راه افتادن آب شکافته شد تا اینکه دیواری از آب در دو طرف بنی اسرائیل بر روی زمین خشک به وجود اود وقتی مصریان در صدد برآمدن قوم اسرائیل رو تعقیب کنن دیوارها فرو ریخت و مصریان رو غرق کرد وقتی شما به داستانی مثل این در کتاب خروج میرسید باید مسئله خیلی مهمی رو روشن کنید آیا به ماوره و طبیعه باور میکنید یا باور نمیکنید من از تعابیری که خیلی از مردم از این داستان میکنن تعجب میکنم بعضیا میگن اون دریای سرخ نبود اون نیزار بود و آب خیلی کم عمق بود یه بار شنیدم این تعبیر در کلاس کانون شادی تدریس میشده و پسر کوچکی در حالی که سرشو می‌خاروند به معلمش گفته خب حقیقتا موجزه بزرگی بوده که سربازان مسی در آب کم غرق شدن و یه پسر کوچکی دیگه از کانون شادی برگشت خونه و مادرش گفت جان امروز بهتون چی یاد دادن جان گفت او, او اونا گفتن که سربازان اسرائیلی در کنار دریای سرخ بودن که ارتش مصر به اونها رسیدن و اونها رو گوشمالی دادند مادرش پرسید خب بعد چی شد؟ جان گفت بعد موسا دستور داد یه پل شناور روی دریای سرخ ساختن و تمام اسرائیلی ها از روش عبور کردن. مادرش پرسید اونا اینو بهتون گفتند؟ جان گفت مادر اگه بگم اونا چی گفتن که عمرن تو باور نمی کنی؟ وقتی به معجزات عهد قدیم می رسید باید تصمیم بگیرید که به ماور و طبیعه باور دارید یا باور ندارید؟ من به این معجزه باور دارم. من به این داستان همونطور که نوشته شده باور دارم. باور دارم که در اون ایام واقعا اتفاق افتاده. باور دارم که این داستان نجات ما رو برای ما به تصویر میکشه. برای نجات شما خدا لازم بود معجزه کنه. برای نجات من خدا لازم بود معجزه کنه. این چیزیه که معجزه دریای سرخ برای ما به تصویر میکشه. این نجات نهایی از بردگی مصر و اسارت فرعون بود. بعد از اینکه بنی اسرائیل از دریای سرخ عبور کردند، اونا یه معجزه دیگه هم نیاز داشتن. اونا به هدایت الهی نیاز داشتن. وقتی من و شما نجات یافتیم، ما به موجزه دیگه ای نیاز داریم. ما به هدایت الهی نیاز داریم چون خدا ما رو برای منظوری نجات داده. پولس به اون منظور اراده نیکو پسندیده و کامل خدا میگه. پولس به ما میگه که وقتی نجات یافتیم، ما کار دست خدا هستیم. خلق شده در مسیح عیسی برای کار نیکو که خدا از قبل برای ما مقرر کرده وقتی خدا ما رو نجات میده او ما رو برای منظوری در این زندگی و زندگی آینده نجات میده اون منظور برای این زندگی این طور شرط داده شده کارهایی که خدا از قبل مقدر کرده که ما باید در اون گام برداریم خدا کاری داره که میخواد شما انجام بدید وقتی خدا ما رو از مصرمون نجات میده این تازه شروع کاره خدا میخواد ما را به کارهایی هدایت کنه که برای اون ما را نجات داده برای تحقق این ما به مجزه هدایت الهی نیاز داریم و این به زیبایی در کتاب خروج به تصویر کشیده شده. به وسیله ابر در روز و ستون آتش در شب ابری وجود داشت که بنی اسرائیل رو در روز هدایت میکرد و ستونی از آتش که اونا را در شب هدایت میکرد اون معجزه زیبا تصویری از هدایت الهیه. وقتی بنی اسرائیل از دریای سرخ عبور کردند و در بیابان بودند، اونا مشکل بزرگی داشتند. موسی با چالش بزرگی روبرو بود. اون مردم چی خواهند خورد؟ چیزی حدود دو سه میلیون نفر به غذا نیاز داشتند. چیزی راجع به خدمات غذایی میدونید میدونید چه مقدار آزوقه برای تدارک تغذیه یک ارتش بزرگ لازمه؟ قوم بنی اسرائیل چی باید میخوردن؟ چی باید می‌نوشیدند؟ این چالش بزرگی برای موسی بود. بانی اسرائیل هنوز در خلسه نجاتشون از مصر بودن. اونا به خوردن و آشامیدن فکر نمیکردند و اهمیت نمیدادند. تا اینکه بالاخره تو صحرا به خودشون اومدن. بعد فهمیدن که مشکل بزرگی دارن. ما چی باید بخوریم؟ چی باید بنوشیم؟ خدا وارد عمل میشه و به طور خارق العاده نیازهاشون نیازهاشونو رفع میکنه. یه روز صبح وقتی بیدار شدن سرتاسر سر زمین پر بود از ماده سفید رنگ. اونا گفتن این چیه؟ این چیه؟ در عبری به کلمات این چیه من نا گفته میشه کلمه من از اونجا اومده پس اونا به این ماده سفید من گفتن. اونا تصمیم نگرفته بودن به اون چی بگن فقط میگفتن این چیه این چیه که همه زمین رو پوشونده اولین باری که همسرم برای من خاگینه درست کرد من به اون من گفتم و از اون موقع به, بعد به اون من میگم چون هنوزم نفهمیدم اون چیه این من که خدا برای قوم اسرائیل فراهم کرد تمام نیازهای غذایی اونها رو تأمین میکرد در ضمن خدا به طور العاده برای اونا در بیابون بلدرچین و آب هم فراهم کرد تدارک غذا برای قوم خدا به طور ماورا و طبیعه مجزه دیگری رو که ما نیاز داریم برای ما به تصویر میکشه موجزهی برای نجات ما لازمه موجزهی برای هدایت ما در مسیر اراده خدا لازمه و موجزهی برای نگه داشتن ما منبع معاش شما کی و یا چیه؟ آیا به اقتصاد کشورتون تکیه می کنید؟ اعتقاد دارید که منبع امنیت شما از اونجاست؟ به شغلتون تکیه می کنید؟ شخصیتتون؟ سلامتیتون؟ به نظر من اگه شما بر این باورید بر زمین و سست و لرزان استادید چشمان همه به سوی خداست خدا گوشت مورد نیازشون رو در فصلش یا در زمان نیاز بهشون میده. خدا دستش رو باز میکنه و نیازهای هر جنبنده ای رو فراهم میکنه قبل از خوردن وقتی خدا را برای قضایی که به ما شکر می کنیم بر این حقیقت اقرار می‌کنیم که خدا من به اون غذا ایمان داریم که غذامون از طرف او میاد ایمان داریم که خدا نیازهای ما رو براورده میکنه نه تم های ما رو تهیه مایحتاج قوم خدا در مدت چهل سال سرگردانی اونا در بیابون اون حقیقت رو برای ما به تصویر میکشه در کتاب خروج ما به مبنای مهمترین شکل پرستش خودمون پی میبریم آینهای های پرستشی در نجات قوم اسرائیل تبدیل به آیین پرستشی در نجات ما شده گفته شده که آخرین بلایی که بر مصر نازل شد باعث مرگ هر نخوصاده‌ای در مصر گردید مهمترین شکل پرستش در ایمان یهودی بر مبنای باب دوازدهم کتاب خروج بنا شده وقتی فرشته خدا بر مصر فرود آمد و جان هر نخوصاده‌ای رو در خانه های مصر می گرفت، او به مردم تعلیم داد که برای قربانی کنند اسرائیل باید خون این برره رو می گرفتن و بر بالای در و به دو طرف چهارچوبه در خانه هایشان می به این ترتیب ضمن داشتن این خون بر درگاه خانه هاشان اونا باید در خانه هایشان می ماندن و اون برره رو میخوردن که باید طبق دستور عمل خداوند تهیه می خون مالیده شده بر بالا و طرفین درگاه خانه صلیب رو در ذهن تدایی میکنه. عهد جدید سا میگه موسی درباره من نوشته. این نشانه کتاب مقدس رو برای رسولان باز کرد. عیسی میگه همه ی کتاب مقدس درباره منه. موسا راجع به من نوشته. ما در کتاب خروج و لاویان میبینیم که منظور ایسا چی بوده. ما همین حقیقت رو در کتاب پیدایش میبینیم. آین فسح یهودیان به عنوان آینی سالانه در تمام نسلهای اونها برقرار و رعایت شده. اون آین عبور نام گرفته چون که فرشته یهوه وقتی خون برره رو بر سردر خانه های بنی اسرائیل دیده از روی خانه عبور کرده. فرشته خداوند از روی خانه های بنی اسرائیل عبور کرده ولی جان نخست ساده های همهی خانه های رو گرفته. سالها بعد خداوند ما های مسیح با رسولان یهودی خود بر سفره نشسته و این آین فسح رو بهجا میاره. عیسی گفت باور کنید دیگر از این فسح نخواهم خورد تا زمانی که پادشاهی خدا تحقق یابد در حالی این رو می گفت که تا ساعتی دیگر بر صلیب می مرد عیسی چه منظوری داشت وقتی که گفت من دیگر از این فسح نخواهم خورد تا زمانی که پادشاهی خدا و یا اراده خدا تحقق یابد وقتی عیسی به این دنیا آمد یحیای تعمید دهنده عیسی را اینگونه معرفی کرد این است بره خدا که گناه از جهان بر می گیرد. بره‌ای که توسط بره فسح به تصویر کشیده شده و همه قربانی هایی که در سیستم قربانی انجام میشد با مرگ عیسی بر صلیب به کمال رسید. عیسیای مسیح بره خدا بود که بره فسح او رو به تصویر کشیده بود که مرگ او گناه از جهان بر وقتی عیسی اون فسح یهودی رو با رسولان یهودی خود میخورد میدانست که بعضی از اون مردانی که با او بر سر سفره نشسته اند در موقع نوشتن انجیل یا زندگی نامه عیسی از خلال کلماتی که مسیح رو به عنوان قربانی در کتاب مقدس به تصویر کشیده، او رو به یاد خواهند آورد. در اناجیل رسولان عیسی را به طرق مختلفی ترسیم کنند اما وقتی عیسی داشت اون فسح رو با رسولان میخورد گویی عیسی داشت به اونها می گفت بذارید براتون تصویری بدم که حقیقتاً قلب داستان رو می گه بذارید بهتون بگم که من واقعاً می خوام چطور از من یاد کنید. من می‌خوام منو به عنوان برای فسح بر روی صلیب به بیارید. عیسی تصمیم گرفته بود که بر روی صلیب آورده بشه چون او میدونست ما لازمه که او رو آنگونه به یاد بیاریم. داشت فرم پرستشی رو پای ریزی می کرد که مبنای ایمان یهودی بود و اساس نجات مسیحی به این دلیل که ایمان مسیحی گاهی به عنوان مکاشفه حقیقت یهودی مسیحی توصیف شده. پرستش اساسی یهود فسحه و پرستش اساسی مسیحی شرکت در اشاء ربانی یا شام خداوند هست. دلیلی که چرا پرستش به شکل به آوردن فسح به عنوان قلب نجات یهودیان و اشای ربانی به عنوان قلب ایمان مسیحی هست اینه که ای انجام شد تا بنی اسرائیل از مصر نجات پیدا کنند و ای انجام شد تا من و شما از اصارت گناهمان آزاد بشیم. در این مورد اشتباه نکنید فقط یک موجزه هست که میتونه من و شما را نجات بده. و اون مجزه که در شکل پرستش اساسی یهودیان به تصویر کشیده شده یعنی ایسای مسیح بر روی صلیب خودش می میره به خاطر گناهان این دنیا به طور عام و گناهان ما به طور خاص. دعای من اینه که وقتی کتاب خروج رو می خونید موجزاتی رو ببینید که منجر به نجات اسرائیلیان شد و همون موجزاتی که من و شما رو هم نجات میده چیزی که به شکافت شدن دریای سرخ و می‌بخشه، چیزی که بیانگر اونه. بزرگترین موجزه خدا شکافتن حجم عظیم از آب نبود تا اینکه قومش بتونن از بین دیواره‌های آب برخشگی گام بردارن. بلکه فراهم کردن راهی برای نجات ابدی توسط خداوند مایسای مسیح بود. ایمان دارم که درس امروز با دیدن موجزاتی که خدا برای نجات ما فراهم کرده و همینطور ترفندهای شیطان که سعی در به سازش کشیدن مداره به شما برکت داده. دوستان، دعای من اینه که این درس به شما کمک کنه که یاد بگیرین به تقدیر الهی پاسخ شایسته بدین و به وسوسه های سازشکارانه جواب منفی بدین و قاطعانه بگین نه. متشکریم که ترتیبی میدین که جلسه بعد در ادامه مطالعه کلام خدا همراه ما باشیم. دعا می کنم که خدای ما، پدر ما که موجزه رهایی ما رو از اصارت گناه توسط عیسی مسیح فراهم کرده تا ملاقات بعدی همراه شما باشه.